کتاب افسانه های آزربای جان روایت سمد بهرنگی و بهروز تبریزی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افثانه ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده یاسمن علی این داستان پیراهن عروسی از سنگ آسیا روزی بود و روزگاری. پادشاهی بود که دختری داشت خیلی زیبا. یه نازنین سنم حسابی. اگه دنیا رو زیر پامیزشتی مثل و مانندش رو پیدا نمی کردی. تموم شاسداده از مملکت های مختلف به خاستگارش می اومده. اما پدرش رضایت نمیداد. یه پسر فقیری هم بود که عاشق دختر پادشاه بود. دختر هم عاشق اون بود اما پدرش راضی نمیشد. می گفت این کار اصلا شدنی نیست اگه من دخترم رو به یه پسر فقیر بدم مردم چی میگن روزی باز خاستگاری از یه مملکت دیگه رسید و پیغام فرستاد چنتا مسئله میگم اگه جواب اونها رو ندادید باید دخترتون رو به من بدید اول چهارده تا از فرستاد که همهشون یه قد و یه رنگ بودن. گفت معلوم کنید چند تا این ها یه ساله، چند تا شون دو ساله و چند تا شون سه ساله است. پادشاه دستور داد میدون رو آب و جارو کردن و همه جمع شدن تا اگه کسی جواب مسئله رو میدونه بگه. همه ما تو معطل استاده بودن و به اسبا نگاه میکردند. که پسر فقیر به پادشاه نزدیک شد و گفت پادشاه من جواب مسئله رو میدونم. پادشاه گفت اگه بدونی هرچی که بخوای میدم. پسر گفت پادشا به سلامت باد. دخترت رو به من بده. تا جواب مسئله رو بگم. پادشا گفت حالا جواب مسئله رو بگو بعد. پسر گفت عایری یونجه بیارن چند منجو و چند بادی شیر وقتی یونجه و جو و شیر حاضر شد هر کدوم رو گذاشت طرفی خواستگار پیش خودش گفت عجب هوشی داره این پسر پسر گفت حالا اسبارو ول کنید اسبارو ول کردند یک سال ها رفتن طرف ظرف شیر دو سال ها رفتن طرف یونجه و سه ساله ها رفتن طرف جب. پادشاه خوشحال شد و پول زیادی به پسر داد. اما دخترش رو نداد. یک هفته بعد چل تا صندوق دربسته از طرف خاستگار دختر اومد که اگه نتونید بگید توی کدوم یکی از این صندوق مرد و توی کدوم یکی زن دختر رو باید به من بدید. پادشاه کسی رو دنبال پسر فرستاد چون غیر از اون کسی نمیتونست جواب این مسئله رو بده باز میدون رو آب و جارو کردن و مردم جمع شدن صندوق رو گذاشتن وسط میدون پسر به صندوق نزدیک شد و اونا رو یکی یکی برداشت و سباک سنگین کرد گذاشت زمینو انگار که درشون رو خودش قفل کرده باشه گفت توی این یکی زنه توی اون یکی مرد سر صندوقا رو باز کردن و دیدن درست گفته. پادشاه خوشحال شد و باز انعام داد. اما دخترش رو نداد. خواستگار هم که از هوش پسر خوشش اومده بود، کم مونده بود اون رو جزه ملازمان خودش بکنه. دفعه دوم سنگ آسیاب بزرگی فرستاد که "باید یه پیرهن عروسی از این ببرید و الا دختر رو باید به من بدید." باز پسر رو صدا کردن که جواب این یکی مسئله هم با توه. میدون رو آب و جارو کردن. پسر آستینهاش رو بالا زد و رفت وسط میدون کنار سنگ آسیاب. جیبهاش رو پر پرشنگ کرده بود. اونهایی هم که سنگ آورده بودند بودن استاده بودن کنار سنگ. پسر اول به پادشاه گفت بگو عقد دخترت رو به نام من بخونن بعد شروع به کار کنید. من چیز دیگه از تو نمیخوام. پادشا دید که پسر این دفعه دست بردار نمیشه قبول کرد و گفت که عقد دخترش رو به نام پسر بخوند. اون وقت پسر دور سنگ چرخ زد. این طرف و اون طرف رفت. خم و راست شد و عدای خیاط‌ها رو در آورد که مثلا داره پارچه رو میبرو داد و فریاد که زود باشید قیچی رو بیارید و از این حرفا. آخرش مشتیشن ریخت کف دست یکی از آدم های خواستگار خاستگار که زود باش سوزن رو نخ کن. اون که پاک ماتش برده بود گفت تو عقلت کم شده مگه میشه شن رو نخ کرد؟ پسر زود جواب داد پس چطوری میشه از سنگ آسیا پیرهن عروسی دوخت خاستگار و آدم ها شرمنده شدن و برگشتن مملکت خودشون. پادشاه دستور داد هفت شبانه روز جهشت گرفتن و مجلس شادی برپا کردن و دخترش رو به دست پسر سپرد. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای ای نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی تی نقطه m e m e h a n نشانی وبلاگ ما h نقط COم مهران دوستی. blog.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی